بین قواعدی که ناسومنین و لاتودایم جعلها دارد. اجمعینا موعود فرمان جمعی مشترین و شریعه یا از شد بحث کبیر و سریر رو به مناسبتی که معرکم و متعرض شدن اینجا متعرض میشین و باز هم سعی میکنین نسبتا اجمالی باشه که یکی یکی این روایتو خوندن و بررسی کردن خیلی طول میتوی که مضاقن به خدا آیات مبارکه از کنین ادباب شلو پنج مرحوم سال بسائل از ادباب جهاد نفس بابی رو در باب با عنوان وجوب اجتناب کبائر آوردن البته اجتناب سبائر رو باجبه فرح نمون این این شبهه معروف آین اصولیی که ایشون نرکرده بود و این سه تا روایتی رو که ایشون در اینجا آوردن هر سه از مرمون کلینی البته رواست سر رو صدور در کتاب علم داره در فقیل نرد من این مقدمات رو عرض می کنم برای اینکه بعدها که مرجومه صاحب سرائر تعجب کرده چرا مثلا شیخ طوسی مطلب رو که مبسوط آورده و علما آورده این منشأش این بوده که ظاهرا صاحب سرائر دقیق نموند اولا قبل ترسی از شیخ طوسی الانو چون شیخ کلینی این رو آورده لیکن چون شیفت کنین تو اصول آورده و تو کتاب شهادان ناورده مثلا یا خیال کردیش کتاب شیفت کنین کتاب حدیث مثلا ما از کردیم کتاب کافی هم حدیث هم فقه ما با کافی همونطور این رو ادهی از قبل از ما بچن ادهی از این طبان که با کافی معامله کتاب فقه بکنیم نه کتاب حدیث چون کافی اون روایات آورده که اختیار کرده و قبول داره کتاب حدیث اصلاح هم بروت بیاده یسرده ها سردن ایشون این کار نکردن. پس این که ایشونو شیال کردم بحث کبیره در کتاب فر نبوده منشه اشتباهشون روشن بشه و اما در کتاب ما در اصناه این نقطه که گفتم در ذهنتون باشه مرموم فقیه مرموم صدوق هم در فقیه هم داره به این عنوان قال سال والله سلام مننشن بر کبااعر یک فول الله و جمع از نوبه و دا که معول الله ازوجن انتشتن با کاهر ماتون ها نهن نوکفر همکن سی آکن این روشون به عنوان امام صادق داره فعلا ما جای اینو نداریم و این از کجا موم شیخ ص هم قاعدی نیست که مرزوعی نقل بکنه فعلاً این مطلبی رو که ایشون فرمودن ما انحبی عبدالله نداریم بله حالا اینا تا پیدا بشده مگه یک جایی بوده که و به عنوان قالت ساده هم داره که احتمالاً مشاهد حقوم قبول داشته در سواقل اعمال انحبیه انسعده انعبدالله عبدالله کردیم در غیر از کتاب فقیه از راز سر زیاده بود احمد ابن محمد ابن ایسا ان حسین ابن سعید آرزم باید که تا حسین سعید باشه به احتمال ان محمد ابن فوزی ان عبدالحسن فی قول الله عزیزم جم انتشتن بو کواه رو متنهونه ان نکفران کن سیاد رو از کنم این شخصیست بنام محمد ابن فوزید در این طبقه و چند نفر این صاحبا تشریزش به نحوه دقیق مشکله و رسوق ببین که مثلا قابل اعتماده اون هم خیلی مشکله خیلی عجیبه تا اونجایی که من دیدم به نظرم شاد در کتب مورد چون محوم شیخ چند تا محمد نفذیل عصدی بسری تشریف دقیقش توی روایات خیلی مشکله انتشنه بود چم. مگر گیم دو سنفر یه نفره کبا ارماتون هن نکفرن کن سیاهات کن قال منش اشتهل كبائر ما او عد الله عليه النار اذا كان مؤمنا كثر الله عنه السيئات البته این مطلب رو اهل سنت نذارن این منحصرا در مصادر ولایت مصادر ما یعنی ائمه مثل امام حسن یعنی این بحثی که قران داره نکثر عنكم سيئاتكم این فرع بحث کبائر و صغائر رو نگاه نكنی اون جوان به عقیده را هم نگاه بکنید یعنی اگر کسی خودش مثلا در ولایتی یزید مثلا دونست این خیال نکنه با اشتباه کبائر سیئات و مکفراته چون اون جانب عقیده ایش کارو بیشتر خراب میکنه دقت بکن یعنی یک طهری دیگری چون خود دین رواجه اهل سنت رو که آیا مکفرات غیر مکفرات طهر اهل بهت اینه که این تکفیر و عدم تکفیر برمیگرده به یک جانب عقائدی مثل اینالله لا یخته رو پنیوش را که به شرک بخشیده نمیشه و یخته رو مادو داده چطور؟ چما اگر شرک نداشتین دقیق مکنین اگر شرک نداشتین گناه دیگری بود همینجا من دیروز یک نقطه توضیح دم اینجا و الان میگم بعد ازروازشون کنم او در برایات احل بیت از این آیه نباله که مادون زالک یعنی الکبائر دیروز خب از بعضی احل سنت مادون زالک رو گذن از فقائر و یک فرو مادون زالک لمن تو یه چند تا ربایات احل بیت مادون زالک ماند کبائره و اونی که به شفاعت رسولین من یشا ایش به حاطه این که در کبائر معذالت مشیت الهی هست و شفاعتمند ممکن است انوذخر و شفاعتی در اهل کبائر من اومد. پس سراغ این خوب دقت بکنید روایت اهل بیت میگه صغائر هم همین همینجوره هم. در کبائر اگر شرک نبود ممکن است خدا ببخشه در صغائر مکفرات هم به شرط که عقیده درست باشه ولایت درست باشه ولایت ولی الله باشی اگر از ولایت ولی الله خارج شدیم اونجا اجتناب کباهه کافی نیست این طرف دیگه است در روایاته یکیش همین روایت اول که سید سنده بود مرمون سال و در اون اول باب بردو قال معرفتور امام و اجتناب کباهه یکیش هم همین حدیث که از کلم روایت محمد نخزر شد خالی از اشکال نباشه یک نقطه ابهامی داره. با قطع نظر از محمد نوفزل حدیث خوبه قال منشتن بر کبائه ما او عدل و علیه الله علیه النا اذا کان مؤمنم کفر الله و انحسیه پس یک تفسیر ما از اهل داریم و سر اینکه که بزرگان ما اصرار داشتن که قرآن یک خبرون احل بید همین بود یعنی اهل سنات میونه میونه ما در ولایت یزید هستیم در ولایت خاصو مثلا ولید و اون انوار و بنی عباس و خلیفه کنن حکام بنی عباس و اینها و اجتناب کبائر این تکفیر سیئات میاره به این چطور میشه این شوبه اما میخواد اون شوبه رو حل بکنه اون اجتناب کبائری تکفیر سیئات میاره که با ایمان باشه بله به هر حال اون روایت صدوح حالا کفران با جمعه زنوبه اون روایت صدوح که ایشان در کتاب فقیه عورده قید ایمان توش نداره شاید بقوله هموزی ها رهدتی فکر کرده اون روایت توش قید ایمان نداره اما روایت دیگه داریم که تصریف داره که این تکفیر خاص به مؤمنه خب در فقیل مهمه این نقطه این طور نیست که اجتنابال کبائر به نفسه موجب تکفیر سبائر بشه اجتنابال کبائر محل ایمان معرفت الامام یو کتفرا همه اون تکفیر با این پیده حدیث شمالشیش البته از کردم این روایت در کتاب سوابال اعمال رو برده خود ایشان مشکل داشتن که در کتاب فقیق نه بردن. روایت دیگری در کتاب اقابال اعمالشون ایشون انا ابي پدر ایشان که بزرگوارن انا محمد بن يحيى محمد بن يحيى العطار القومی، از بزرگان و اجلای اصحاب هم. ان محمد بن احمد بن محمد بن احمد این صاحب نوابدل فکر است و چون ایشان کتاب دیگری نداره محمد بن احمد ظاهرا هر چه روای مد از محمد بن احمد از نوابدل حکمت باشه ظاهرا اینطور از کتاب نوادرالحکمه ان علی ابن اسماعیل، ارز شد که بعضی از بزرگان همین کتاب کشی داره که علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی یکیه که ما سابقا اشکال داشتیم اخیران مراجعات بیشتریش رو ظاهران همین درسته علی ابن سندی و علی ابن اسماعیل، البته ما از این علی ابن اسماعیل معلومات زیادی نداریم خوب دقیق بکنیم اما انصافه اولا جزوه اشائره قومه علی ابن اسمایل اشعری قومی ایشون جزوه اشعره قومه تا اونجایی هم که من در روایاتیشانی به یه برادری هم داره که گاهی به او محمد ابن اسماعیل یا محمد ابن سندی میگن ایشون هم علی ابن سندی این دوتا برادر هم. اما علی نخشه علی بیشتره تا شواهدی که ما مراجعه کردیم یکی از علمای قوم از اشائره که به کوفه و عراق رفته و مصادر عراق رو به قوم آورده، علی ابن اسمان. و نسبتا زیاده حالا مثل احمد اشعری نیست اما این علی هشعری هم آدم کمی نیست معلومات ما نسبت به ایشان زیاد نیست اما مجموعه قواهی نسبت به ایشان رسوق آوره ما مدتی نه همیشه از این که کامل از ایشان نه به ایشان این ساخت شناخت ما بهتر شد ایشون از اشاره قومه و با مراجعاتی که به روایات متعدد ایشان شده تمایل فعلا به حصول ایشانه و نقش ایشان و تحصیل ایشان دور ایشان به اصطلاح بیشتر در نقل های اراغه مثلا اینجا ممکنه احمد بن نرزه باشه بله انا احمد ابن ناز که سغز انا عباده ابن از شخصیت های کوفه بود حالا رسالتش چه ارزش کنه قال سهل تواجه فر اهل کبائر فقال كل ما او عدم لا و عليه نار میشه با مجموعه شواهد قبولش کرد حتی خود علی ابن اسماعیل هم استثناء نشده در مشایخ مرحوم محمد زهرا احمد استصاحش ذکرن شواهی دوری که من به ازها نگاه کردم خودم مراجعه کردم میشه بنظر مردم کشیان کشی هم از استادش که سر اتون با نظر از او خود من مراجعه کردم تمایل ما به بسوخ ایشانه و در معامل اخبار بله انا ابی هم محمد ابن یحیی های عطار امی انا ابی سعید آدمی هم سهل ابن زیاده انه حسن ابن محبوب از کردیم این سهل ابن زیاد توصیق درستی نداره لیکن ایشون هم جزو کسانی نیست که از قوم به اراغ رفته برای نقل میراث، این میراس اینجا حسن ابن محبوبه پس این از کتاب حسن و محبوب و این مسلمه یعنی شواهد ما است که نسخه ای از کتاب حسن محبوب به روایت سهل ابن زیاد در قوم بوده کل این هم گایی ازش نرمزه کنه این مسلمه پیشه بود. ان علی بن رعاب که بسیار بزرگ باره ان حسن بن زیاده اتار این باید با مجموعه شواره درسته شد ان عبی عبدالله علیه فی حدیث ولکه حدیث طولانی مرموم های ربانی در خامش اوگردن خواستان آن مراجعه کنیگه خیلی طول می قد سمال لاغ مؤمنین، بل عمل صالح مؤمنین، و لم یوسن به من رک بل کبار و ما و عدالله عزوجل علیه نار مؤمنیم کی قرآن ولای اسر، ولا نصر نه ایمان بعد از آن این روایت مبارکی خوبی که طولانی این که قطعی از کلام ایمان، اشاره است اون مبحث بسیار معروف در فرق بین اسلام و ایمان و حقیقت ایمان بودن افرادی است لذا هم مرجعه که از افکار مرجعه این بود، هر کسی که به زبان ایمان بیاره حالا بعضی وقتات به هلن باشه نباشه. این دیگه مؤمنه ولو فعل ما فعل. در مقابل اینها خوارج بودن می که اگر بگه لا اله الا الله و نمازم بخونه لکن مرتکب کبیره بشه این کافره یه حد وسطی قائل نه یکی می گفت اگر گفت لا اله الا الله ولی ارتکب بر کبائر این مؤمنه در مقابل اونا بگفتن ولو ارتکب بر الکبائر این کافره ولو صلا وسام و لا الاغ الا الله گفت کافره اون طرح احلقه که این بود اگر کسی ایمان رو برد و اعمال انجام داد و کباره و نستجی را برد انجام داد فاسقه مؤمن نیست نه قول مرجعه درسته که او رو مؤمن میدونن و نه قول خباره درسته که او رو کافر میدونن پرشنشون شما یه همیچیه نه اون قول رو بگیریم شون هم بگوستن هر گوه لا لا لا, لا جمعیه فواهش هم انجام بده فی درجات جمعه نه اون قول رو انجام بدیم که بگیم ایشون با ارتکاب کبائر باز هم مؤمنه و نه اون قولی که بگوه با ارتکاب کبائر کافره ما باید درجه وسط رو بگیریم مؤمن بودن به نفی کبائره با عدم ارتکاب اون وقت مؤمنه با ارتکاب کبال ابن نستجیب و کافر نیست بلکه فاسره ظالمه و تی کتاب صفات شیعه باز مقروم فضول قدس الله نفسه ان عبدالواهد ابن محمد ابن عبدوس یا عبدوس نشابوری العتار ازشون تعبیر میکنه عبدالواهد ابن محمد ابن عبدوس علعتار ان نشابوری ایشان رو نمیشن هیچ آشنایی با ایشان نداریم کرارن توضیح دادیم که متاسفانه و قلم در زمان فضل نشازان به نیشابور نیامدن که از ایشان تلقیه ایم بکنون خب ایشان دارن سفری به قوم نیامده این خسارت بزرگ ما این است که آثار علمی فضل نشازان به یک طرق خیلی واضح به ما نرسیده این که مشکلات فضل است مثلا یکی از راه های آثار فضل سفری مرمون شیعه صدوق به نیشابور رفته اگر این کلمه عطار شغل ایناها باشه با این عطار آن من چون این کلمه عطار شغل ایچانه پدرش جدشه من اونا نمیگرم شغل یا اسمش عطار بوده لقبش بوده با به وسیله این شنس از یکی از شایدان فرز به نام علی ابن محمد ابن قطعیبه این ای آثاری از هرز میکنه دقیق میکنی؟ توسط این شنس حالا ما اگر فرض بگذاریم این شخصی رو که صدوب دیده آدم خوب باشه در این حدش فرض بگذاریم یه آثاری از علی بن محمد نقطه ایده هست که قیل از این شخص نقل نکرده نه فقط نقل نکرده در فهارس اصحاب ما هم نیامده البته علی بن محمد نقطه توصیق رسمی واضحی نداره که از شاگدان فرض آثار فرزند نقبل کرده یه مقدار آثاری که برگم کشی از فرزندان ایشانه محبوب بوده به عبدالله قتیبی یا علی بن محمد قتیبی قتیبی نیست جدش قتیب بوده. الان که فهمان ما علی بن محمد رو هم خیلی نمی‌شناسیم، اما اجمالا بد نیست، یعنی یک شهری شناخته شده است. اما این عبدالله بن محمد نعبدوس هم کلّن ازشون آشنایی نداریم. و هم چیزهایی رو که توسط اوتیبی از هرزنه هم خیلی کنه خیلی منکره یعنی آدتا نستجی رو به الله می شه نصبت به این اشتباه کرده به الله ظاهر عملش به بعض می خوره. یعنی کارهایی که ایجون نصبت میده به فضل دشازان می خوره که وضع خودش باشه. نگر اشتباه کرده باشه یا مثلا میگیم گیم نبوده توی یه برک پیدا کرده و داشته نسبت داده اوراق بوده پیدا کرده. دروغ نگفته باشه. و الله فعلا وضع عبدالواهد ابن محمد ابن عبدوس ما بین این دوتا آسیان از تجیر رو به الله وضع حدیث کرده. مثلا این که حدیث حلد و شرالی حدود 16 صفحه از این چاب عادی، بدون پاوره بعدم ادعا کرده عبدالواهد ابن عبدوس که به ابن قطعیبه گفته اونم به فرض گفته گفته سمه تو نرزاد. المرات بعد المرات، این کذب که زیبه، قطعای که زیبه؟ فضل، مرموم، فضل، قدمت هزه رزا نرسیده، چه فضل، المرات و کتاب کاملا واضحه که انشاء خود فضله و مرموم نجاشه هم دوزه آثار فضل آرده، علیه کتاب و کتاب واضحه کاملا و اصولا کتاب در اون زمان نوشته شده برای استلاح زمان ما سلسفه احکام از دیدگاه عقل یا تعلیل احکام یا علت یا انگیزه یابی در اشیاء هر چیز اسمشه اصلا چرا شهادت چرا چرا آن هر ازش دوباره اونطوره چرا چرا این چراها اینه این که الان هم در زمان ما هم بحث شده میان فلاسفه چرا این حوفت هست چرا این خوب از همین یک تفکر راهش در قم بود و اون این که این تعلیل رو از نعل میگرفت مثل ارام شرایط صدور مثل اله شرایط ابن حاتم غزالی مثل ادار شرایع احمد برگی این یک تفکر رایجی بود در قومی ها و در اخباری ها که تعلیل رو از نقل گرفتند. در مقابل در تفکر فضل میشازن تعلیل رو از عقل میگیره کاملا واضحه که این مکتب عقلیگران سعی میکنه تعلیل رو از عقل میگیره شما اگه ذهنتون باشین نگاه کنید در رو ناینی در زیل اون حدیث اول استصحاب ان اليقین لا ینقض به شک فعلا ایشون میگه که چون امام تعلیل آورده اصلی در تعلیل این است که عقلانی باشه نمیشه تعلیل بکنه به یک امر تعبدی و این هم درسته فقط خب اخباری ها تعلیل رو هم تعبدی میگیرن هم خود اون مطلب که بود بود درآوردن هم خود مطلب تعبدی بود هم تعلیلش تعبدی بود وخی لذا این کتاب فضل نشازا در مقابل این مکتب اخباری جری سر کرده تعلیل و عقلی ریاره دقت میکنی اما این جناب عبدالوارد محمد نعوی رسول رحمه الله این کتاب رحمه الله ایشون برداشته با این کار خودش این کتاب رو نقلی کرده از عقلی نقلی درست کتابی که او یه مبنایه چند تا چه بخوایم خیلی ما آلا دی بخوایم یکی یکی حدیث رو بخونیم اصلا اون نمای کلیه من همیشه میگم بحث رو از افق باز نگاه بکنم از افق احلا ایشون اصلا این مجموعه 16 صفحه ای رو که عقلی بوده برداشته نقیش کرده گفته سمیع تو اومن الرزا المرده بعدا مرد یعنی این هم نقلیه و لذا حق بونجاشی است کتاب مال خود فزنه حالا میونه امر این آقا که استاد صدوق صدوق داشتشون مستقیما نرو نکنه رضی الله عنه هم برش گفته ما واقعا ایشون نمیشناسیم نمیدونیم وضع ایشون چطوره احتمالاً اسکار از قوتی باشه بقیه شأن و عجل داشته هم بزه بقیه احادیثی که از دایفی نیست اینقدر خرابی نداره به نظر مرحوم شیخ هم راجع به قوتی گفته نیست نگاه کنید علی بن محمد درست. به نظرم مردموم شخ توصی گفت فز رو بنظرم. مقیه احاددی سرین به این خرابی نیست. این احادیثی که این ا هست خیلی وش خرابه. این قسمتطوری که این آقا نح میکنه. لذا یدور رو ارو رو چون ما خیلی برای ما مشکل مخصا حدور هم میشون دیده ازشون تحمل علیث کرده. کلمه ورز و عرض کل. بزرگان اهل حدیث در اهل سنت هم خیلی رو کلمه وضع حساسن یعنی این وضع کرده از کلم شابهالهش به وضعی میخوره. تا کلمه ما برامون خیلی سخته بگیم وضع حدیث وضع احتمالا اشتباه کرده مجموعه اورا بوده بدونی که اهل فن باشه اهل خبره باشه یه یا هم به فضل آزان داشته این اورا تو جزء فرضه خیال کرده واقعه با هم سند داشته چسبونده و از فضلش آزان ن اما اینکه بگیم جعل کرده باشه و از الحدیث و از این خیلی مشكله علایه‌حال یا اشتباه بیین در کارش بوده که قطعاً نمیشه هر بشه قبول کرد؟ این روایاتی که با این سنده در بین اصحاب ما میدونین شما سابقاً که اصلا مثلا نجاشی که کلا نایوردن نجاشی شیخ فضل نشازا جز اصحاب ازرزا ننوشتن خب این یک کتابی که اقسااتی ازش در کتاب خود فقیه هستی برای خود جای خوده. برده انت مرموم نجاشی عباد فقیر رو دیده. بعد انت شیخ عباد فقیر رو دیده. شیخ اصلا فضل می شازن جون رو از خواب رزانه. می گه سمیه تو رو می دهن. رضا المر رضا در در مرمه. این دیگه از خویون او رو از خواب باید باشه. دقیق می فرمین. لذا شواهد ما قفتی ایز که در این جا خلنی واقع شده. از کنن در این کتب متاختر ما مثل مرموع حکی. یعنی به عنوان اصلا گینگه هول صدر صدوه قبولش کنیم توصیری از یعلا عنه امرش گفته توصیرش بکنیم ادعیه هم حتماً صحیحه فرض نشازم که حق این است که نه صحیح است نه مسحح کلا مفقود کلمات کلمات و خود فذه اصلا روایت نیست که حالا بحث کنیم مسحح است یا صحیحه علی ای حال این یک رساله‌ای در احکام در مجمل نسا داده شده به همین سند معروض صدور این دو سه تا مطلب از ایشان از علی بن ابن محمد ابن عبدوس بعضیارش رساله است بعضیارش حدیث در جاهای مختلف متعرض شدیم از علی بن محمد بن قتاده اینو دیدید اشاره فاضلانی غیظ فاضل تو ذهن من بود حافظه من یه کمی حافظه ما هم کم چیزی شده می‌کنه علی قتیبی نیست شواهد دیگر ما فنده واسه بودیرا ما جای دیگه هم داریم اونجا هم نیست اون خرابی نداره البته با این سند مرحوم صدوقی تو صد سند دیگه هم خیلی بسطشون ضعیفه اما به هر حال توسط این عبدواحد احادیثی نه هر به نظر ما این احادیث اساس نداره و هیچ وجهی نمیشه به فضل نشازان نسبت داد انا رضا علیه السلام قال من اگر رو به توحید و نفی تشبیه این به کلمات همون معتزله میخوره من قاله بین تعطیل و تشبیح. بله و اگر به رجعه به یقین وجتن اول کبائر فاهم مقمنون حقا و ها منشیعتنا من احضی اهل مطلبش درسته آلا. آلا. اما این این کلام ایمان باشه نه محمد بن ادریس رحمه الله البته این زبایت طولانیه و یا آیین خودش رو مراجعه بکنن داره بعد از این که ایوان برای ما آمد وجتنا بر اونم یقین نداره و اگر به رجعت بالمتعته توی کتاب صفات و چی اینطوره و بر این دو تا هم داره تو مضمون حقا علاوه مطلبش اجماعا در روایات دیگه وجود داره اما این روایت نیست این رساله مجهولی نسبت داده شده به فهد مرغوم محمد ابن ادریس در آخر کتاب سرائر نقلن من کتاب موسفن برک از کردیم طرق ابن ادریس این کتاب واضح نیست ابهام داره یه راهایی گفته شده صحبا قابل اعتماع نیست بله شواهدی داریم که کتاب موسفن بکر واسطی تا یک حدی مشهور بوده شواهد خارجی داریم که نمخابلان واضح بحثش بشن انصافش داریم خود موسیقه هم شواهد و قبولش داریم. انزراره بله. این میشه اجمالا به الله طبق رواهده روایاتی که در قسمت سرائر مستثبه سرائر یا نوادر ایش قابل اعتماد نیستن. قلت العبی عبدالله عرقی قول رسول الله لای از نزانی و همومن آل یون زعمنه و روح و ایمان یکی از اون بحثی کرده نوجه به ایمان و کرد. این روایتی بود که لای از نزدانی و هم مومن خوارش میگفتن از این ربایت معلوم میشه هر که زناب بکنه مؤمن نیست مؤمن نبود کافره ویسا این ربایت اینشانا میاداره من چون نبخواه من رو بحث بشم چندین جای دیگه این ربایت تکرار میشه که شما چی میفرماینه از پیغمبر معرف شده که لای از نزانی لذا در ربایت محمده که لای از نزانی و هم یعنی روح و ایمان. یکیش این یه روایت دیگه آمین مراد نستجور در هین زنا یون آمین هون روح و ایمان سرمه یک جایلی علایه حالا یکی از بحث های بسیار مهم کلامی این بود و روایت به من یعنی مثلا فرص کنیم همین کتاب وسائل کلام دست من هست همین بحثا جلد 11 این صفحه 251 بود مثلا روی 252.5 که باب آینده است این یونوز، این هممال، این نعمان رازی قال سمیت عبادل قال من, من زنا خرج من الیمان بله و من شر باز دو مرتبه این محمد ابن عبدالله قال و قلتو لعبی عبدالله لای از نزدانی و مومن قال لا ازاکانه علا بطنه ها سوله بل ایمان فه قام رو دهده از ما این از این روایت داریم به توجیه این روایت لای از نزدانی و مومن لایش و شاره و مومن. که این قسمت ها حالا این خیلی به اصطلاح به مبحث ما که اون راجع به کفر و ایمانه الان رفی نداره دنبال بحث ما است. از جمله روایاتی که ما داریم در این در باب 5 و 45 و باب 46 همه از کلمه همه روایات رو نمیخونیم عده‌ای از روایات متعرض میشیم در این نکاتی که داره ایندثو من اصحاب ما مرحوم کلین احمد بن محمد این هم باز از کتاب کافیه روشن شد این هم از کتاب کافیه که در اصول کافی بابي رو قرار داده بنام بابل کباهر اونجاست از احمد بن محمد که اشعری است از سنده عن ابن محبوب الان توضیح دادیم انصاف قضیه کتب ابن محبوب چند نسخش به قم اومده یکیش نوسته احمدین بهتر اینو نسخه شه یکیش نوسته سهل زیاده که الان حدیث قبلی خوندی قال كتب معي بعض اصحابنا الى ابو الحسن عليه السلام و موسى بن جعفر يسالوا عن الكبائر كم و وما هي قال الكبائر من به ما بعد الله عليه النار كفر عن سيئات اذا كان مؤمنا مرده معلوم میشه که جز کسانی است که میگه ظاهر آقایی رو باید قید بزنیم نکفر مع سیاد کن من ایمان اما عبارت صدوق این بود که نه ظاهر آقایی رو قید نزنیم منشتنه ولکباهر نکفر انو سیادی و سبع الموبجا موجبات از من در روات احسانه سبع الموبغات موجبات توجب و نال قفعند قتل نفس حرام و عقوق الواردن و اكل ربا و این روایت خوندی کردن در این سبع مبدغات که در کتب اهل سنت هم آمده و مهمترین ربا شون روایت ابی هریره از اجازه اسانید تو از همه مهمتره و در مصادر فراوانش آمده توی بعضیاش سهر هم هست تو بعضی‌هاش تعلقی هست تو این روایت ما نیست تو این سبع موجباتی که در روایت ماست سهر نیامده حدیث شماره دو این حدیث شماره دو این در کتاب کافی آمده در کتاب صدوق هم نقل شده دقیق می کنم؟ مرحوم صدوق هم بله. این کتاب این دواست رو نقل کرده به اصطلاح ایون اخبار رضا و در کتاب علم همون در حاشی اصفهانی هم گفتورد. بله ایشون میشه متفرقات حالا بحث تفری این کتاب در کتاب تهذیب این حدیث طولانی نیامده. بعضی مرحوم شیخ کلنی عدته مون اصحابنا ان البرقی ان عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی من سالبا توضیحی دادم که عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه در ری بنهر مستقر بود بعضی از قمی‌ها و تهرانی‌ها به حساب با ایشان ملاقات داشتند. چه ظاهراً معروف برای ازناس. حالا حدس این عروج اترن سانی از ازت جواب حالا سمت و عبی ازت رضا یا بولو سمت و عبی موسی بن جعفر عليه السلام یا بولو داخل امر ابن ابی علاه عبی, علا عبی عبد عليه السلام این بزرگ معتقد است خیلی هم برای خودش مقامات علمی حالا خیلی منصوب دوانگی بین بی شخص اراده علمی داشته امر ابن ابی علوی عبد الله سلام مصلی و جلس تلاوات الايه و للذین يشنبون کبائر الاسم والتواهش یه نکته ای رو می‌خواستم عرض بکنم هر کدوم در وقته گذاشته که ما دو تا آیه راجبه کبیره داریم یکی این آیه سوره نساء بود انتشتن رو کبائر ما تنونن هم ما كثر عنكم سيئاتكم یک آیه دیگه در سوره نجمی داریم این در سوره نجمی تواحش لمن این تا اینجا آورده دو تا آیه اونی که امر ابن خونده بر امام این مال سوره نجمی چون یک بحث مال صورت است و این نقطه رو خوب دقیق بکنید درید نیست اینی که از عبدالله عباس و ادهی نرمی کردیم آیه خویم فرمان قالب ازده هون در گفتم کبائر ما او جبل لا نار علیه اقیم علیه هفیه حد او ما اقیمه اون دیگه این رو این برید نیست این اقیمه علیه هفیه حد مال تواهش باشه خوب دقت بکنید چون ارث کردم کلمه فهشه در لغت عرب خصوصا وقتی که باب تفاول میره معنای ظهور تفاحش امر خیلی واضح و روشن شد شخصی که اقامه حد بشه اولا اینکه از متخلفین که از گناهان شده مثل سفاحت خوردن یا سرقت یا زنا بعدم که اقامه حد شده این تفاحش امر رو امرش واضح شده لذا اگر یادتون باشه ما وقتی خوندیم اونا رو در جنال سیوتی در زیر اون آیه رو آورده. شاید اونهایی که تفسیر اضافه کردن برای کبائر نظرشون به این آیه هست الفواهش یعنی یک عنوان کبائر هست یک عنوان فواهش وقت فواهش در این آیه مبارکه مقارنه با کبائره اگ تواهش وارتون اندوننو بهلتی یففها ه رو هافل مشت یا یفها هن رو ها فل روایات لذا ممکنه از اینجا به هم زمین یک اون تفسی که گفته شده قومی معله هل اون نقطش این کلمه تواهش بوده که ممکنه سوال میش عبدلم نه عباس از کجا مطلب گفته کاهه ما و عليه النار وقیما علیه فی روشن شد احتمالاً این دومی وقیما علیه فی حد دو این از حواهش باشه نه کبائر چون اگر وقیما علیه فی حدون این یک نکته دوم ممکنه ما اینطور واقع بشیم مثلا ما این همینجا بگم چه گفت هر لباس برید نکته رو واسه چندش معتبر ممکنه ما قائل بشیم که اصولا غیبت رو ممکنه با شواهد جزو کباهه قرار ندیم اما جزو فواهش هست این بحثی که ابن ما داریم اونو قیبت الان بحث مکاسب شیخ رو اینه که آیا القیبت رو کباهه املا همزه قسم ما تیفت میدون ممکنه است بگیم با در نظر گرفتن مجموعه یه روایات و شواهد و آیاتی که در شعن قیبته بگی غیبت علاوه جز اصطلاح کبائر یعنی ما او عدل علیه نار نیست. چون این نقطه رو عرض بکنم در کلیه روایاتی که ما در باب غیبت داریم یا در باب به اصطلاح در آیه داریم تصریح به نار پیش نشده. عنوان نار نیومده. این یکی. دو در روایات مختلفی که ما و سنی‌ها در غیبت داریم اما در کبائر آمده اسم غیبت نیومده. سه آمده اما غیبت نیومده. شه ممکنه اینجور تفصیل قائل بشیم که دیبد جزء فواهشه نه جزء کبائر به این اصطلاح، باکن فواهش با کبائر یه اثر دارن. یشتنمونن کبائر و فواحش. اما اینکه جزء فواهشه به خاطر اینکه در اون که معتبر در نظر ما امام فرمود که اگر بگیم اون یعنی بعضی از موارد قیبت قطعا همینطوره من قال فی مؤمن ماراعت و ایناح و سمعت و زنا. حالا اگر این نسخه کافی باشه فا مؤمن الگدین قال الله این الگدین و یهبون انتشی الفاهشه این تحبیل به فاهشه شده فی الگدین آمنون که و ملهم البته اون مایشینهو در این نسخه دیگه بود که لذا منش شبهه ما شد در نسخه کافی برای تو نسخه کافی مایشین و یهده مروعته هو نبود این فواهش خاصه ها احتمال داره که ببینیم کبایرن اسم ولی فواهش لذا شعر محباس گفته این دوتایی جورن فواهش هر گناهی که علنی باشه ممکنه کسی با مجموعه روایات ما میتونیم بفهمیم که خود قیبت هم بزر فواهش حالا اون ظابطه یک برای سر صدقه نهست از بس تاکید در آیات در رو غیبت شده یک گناه علنی است گناه فوق العاده بدیه این نکته رو در نتیجه گیری ان برای ما مؤثر هست شما سه تا یک صورت شورا آیه و 700 یه کم سوره شما اون الا لمن شما فرمودید اون سوره نجمه اینکه که تو این هست جزء صورت شورا نه از این که در صم انسکه. در آی اولا هو تعالی الذين اشتروا كبائر باسم الهواء من به نظر انسکه. من صم انسک الا لمن رو یعنی. احتمال میدم همین سری نژ نخونده. آیه نژ نخونده. چون الا لمن داره گفته شده لمن سوار سوال معلوم نیست. لمن حالا من آیاتون بشه بودن با بحث این آیه نمیخوام بشن. یک ای که الان در این آیه است این بحث آیه به لحاظ اینکه لَمَن مراد صغائره یا لَمَن شامل کبائرا میشه در این آیه مبارکه لمن ممکنه لَمَن شامل کبائرا بشه حالا وارد بحثش نمی‌شیم میگه گفتم به بحث بریم با در نظر گرفتن روایات شامل کبائرا میشه ما ابتدا تصور ابتدایی نه ماهیت تصور اولیه است که لمن مراد صغائره لكن از زباد در میاد نه شامل کبائرا میشه توضیح جای دیگه علا خدا رو راجعه بود سرمه سکه از این که ما هم سکه احتمالاً الا لمن رو فقال فقاله و ابو عبدالله ما از کتکه. چرا ساکت شدی؟ آلو ایه بانیه هم من کتاب الله هم سرم امره بنقوبه جزو ممتظره است یک ای بخص کلامی هم توی اینجا مطرح بوده بعد امام شروع میبرمه ما اگر یادتون باشه از کتاب خود درون منصورت بعضی رو خوندیم گفتیم که توی کتب شیعه هم هست این در کتب شیعه مورد این بود ما در کتب ما هم روایت دیم که امام صادق با این مخاتبی که است، سعی کردن کبائر رو از خود قرآن در بیارن بله و یکی که آیات رو ذکر کردن البته تو تمام اینها عذاب نیست. مثلا دارم در اینجا در وکالت فلمسن در نلله اول لونو فی الدنیا و آخره بله. و لهم عذابان عظیم، عنوان عذاب عظیم نار نیست. می‌گویم عذاب عظیم مرد من ناره. بله. دارم خرسان بله. یا مثلا بیایی. و اکثرا رضالله علیه و آن لاله دین اکولون رضالله ابومون الله که ما ابومون لذیع من عذابی بله نیامده یا مثلا ول قول الله عزوجل من یارلو یا تو ما قول یوم خود با ایشکوش نیامده عنوان وان عذاب نیامده در این نیست اون حرف ابن عباس که کل لزام به خودم به عذابم به قذابم به لعنت از این دبایت چار اینجور شده فهمید امام تصریح نفهمیدن اما میشه اینجور در آقا حدیث بله شماره 3 این حدیث رو بله این خیلی هم وضع روشنی نداره بله که این دبایت از همه رو به در تفسیر مثلای از نزدانی و آبا مومن. راجع بونه حدیث شماره چهار این در کتاب مروم کلینی آمده هنه علی ابن ابراهی منحبی هنه ابن عبی عمر ظاهره از کتاب ابن عبی عمر نسخه ای از نوادر ابن عمر که توسط ابراهی نحاشم به قوم آمده خوب این نسخه قابل قبوله از ها رو این نسخه اعتماد کردن یکی از مسخه محروف هداب ابن عمر همین نسخه ابن عبی عمر این عبدالرحمن ابن حدیاز از اجلال اصحاب و این عبید ابن زراره پسر زراره معروف. آل سال تو عبدالله اون نکته خاصی که در این کتاب در این روایت هست لطفی که در این ربایت سال تو ان الكبائر سال تو عبدالله ان الكبائر فقال عليه السلام هنفی کتاب علیه سبعان از یکی از نکات خیلی مهم در میان اهل سنت این بود که اهل سنت این مطلب رو به یک نوشتار پیغمبر نسبت دادن. که مال امرو نحرز بود. که پیغمبر در نامه که نوشت از طورت تغییر تعبیر از زمان کباره بود. اکش از زمان کباره. این همون نسبتی رو که اهل سنت به یک نوشتار پیغمبر نسبت دادن در روایات ما هم به یک نوشتار امیر المومنی نسبت داده شده. این هم سندش معتبره پس معلوم میشه مسئله کبائل غیر از احادیث شفاهی به عنوان احادیث کتبی هم هم در میان اهل سندنج هم در ما نعرب شده این ارجان رو خواده شده اختلاف اختلاف بوده فقال هنفی کتاب علیه سب الکفر بلان و قتل و نفس و غربازه. سهرم اینجا نیست یا تعلوم سهرم اینجا نیست و فقط تعرب عدل هجره هست اما سر به اینجا نیست اون وقت احض کردن در اون کتابی که به پیغمبر نستدن اعظمان کباهر بود اینجا داره هنه فی کتاب علیه ظاهرا مرحوم عبید ابن زراره مرد ملایی بوده میگه قال قلتو فقلتو حالا اکبران ما آسی خوده قد کردیم قال نعم یعنی امام بفن که در واقع در کتاب علی ابن عبی طالب هدفشون اکبر بوده در تعبیر به هنه آمده قلتو فا اکل و در همه من مادلیتی ظلمن اکبر هم ترک و سلات میگه من مولایی بشرفتیم اونها فقال علیه السلام ترک و سلات قلتو فما عدد ترک سلاته کباره نگفتی جزو کبار ترک و سلاته. قال ایشی این اول ما قلت و لک یا ایشی این اول نه ایشی این اول ما قلت و لک قلت و الکفر قالت به ان تارک از سلاح کافران یعنی من دیوه علته حالا میشه گفت که اصولا ترک پرائز هم جز به کباره علایه حاله این هم یک روایتی که ما داریم. از جمله روایتی که ما داریم, داریم که به اصطلاح ارزش در زمانه نحوی مرحوم شیخ کلینی باز این روایتو شیخ توسی هم اوورده شیخ کلینی از در حماد حماد عثمان ابن حلبی شد الله حلبی و و Thank <laughs> you.